چه مستی است ندانم که روب ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد تو نیز باده به چنگار و راه سهرا که مرغ نغم سرا ساز خوش آورد دلا چگون چه شکایت ذکار بسته مکن که باد صبح نسیم گره کشا آورد رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد و نفش شاد و تشه آمد سمن سفا ود سباب خوشخبری خدهد سلیمان است که مجده ترب از گلشن سبا ود علاج ضعف دل ما کرشمه ساغیست برار سر که طبیب آمد و دبا ود مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیف چرا که وعده تو کردی او به جا بر به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من در بیش یک غباب فلک غلامی حافظ کنون به تو کند که التجا به در دولت شما بر